بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. دوستان عزيز ومواحد على قمادان عزيز برنامج درس هاي عن عقيدة القرآن والسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بازم جای خوشی هست دوستان عزیز که در دسترخان توحید ششتیم و از کلام الله مجید چیزهای از عقیده توحید یاد میگیریم بزرگترین عزت است والله برای یک مسلمان که با قرآن ارتباط داشته باشه و عقیده خود از قرآن ازیم و شان بگیره و بزرگترین عزت است برای شما که الله برادانی توفیق داده که درسهای از توحید از قرآن می میاموزین و روز روز عقیده عنوز قوی شده میره پاک شده میره و از کفر، شرک، منافقت، گمراهی، زندگ بودن از کل از این پاک میشن و یک انسان موحد واقعی است به شما شما الله جلال جلاله بسازه دوستان عزیز شما ببینین که او روز خلاصه درس دوازدوامی بود که امروز درس سیزدوام است که دوام درس دوازدهم است اویی است که ما گفتیم که مشکل مشرکین ای بود که اونا در توحید ربوبیت توحید ربوبیت چی بود؟ یعنی در افعال الله ایمان داشتن که خالق کننده الله هست، روزی دینده الله است آفتاب و محتاب و زمین و آسمان الله خلق کرده. در کلش اونا باور داشتن از آسمان اگه پرسان میکردی از ابو جهل ابو که عب، توسط از ابرها باران کی نازل میکنه با به زمین میفتن الله لا یقولون الله قرآن بر ما میگه نماز می رفتن تواف می کردن هم قرآن میگه این هم قرآن میگن اگر برای یک نفر بوگوی که برادر یک کس به ای به ای به ای به وجود خالق به ای که رازق است به ای که بر ازاو هم بخوانه و تواف هم بکنه چه قسم آدم است میگه والله امی 100 فیصد مسلمان در حالی که قرآن از این شان بر ما میگه مشریکین امی ها را داشتن خی مشکلشان چرا اینا مشرک شدن؟ و حتی مشرکین یک خطر دیگه که شرک داره است که مشرک هیچ وقت نمیگه که من غلط کردیم میگه تو باطل هستی تو باطل هستی برای پیغمبر میگفتن سعی کن آیت شریف امیگه پا خود میگم چون ما عقیده از قرآن است نتا هر هرگه بیره که میگیم باید سند در قرآن داشته باشیم اگه دغیر ازو باز ملامت میشیم مشرک چی میگف؟ میگف که اگر آیت شریفه میخوریم خوبتر میفهمیم. سوره انفال آیت سی و دومه بکشین در قرآن شریف سوره انفال آیت سی و دوم و قالو و یاد کن وقت را که گفتن اللهم کی میگفتن دیگه مشرکین میگفتن اللهم یا الله ان كان هذا هو الحق حق من عندك اگر این حق باشه از طرف تو باشه قران میگفتن پیغمبر هم میگفتن می عقیده توحید میگفتن که اگر یه حق از طرف تو باشه فطر علينا حجارة من السماء پس سر ما از آسمان سنگ ببار. آب اتناب عذاب قلیم یا بر ما عذاب در ناق برد. یعنی مشرکین در شرک خود آنقدر قایم بودن، ابو جهل و ابو لحاب و ابن خلف و امثالهم هم، یا میگفتن که اگر ای قرآن حق است و ای پیغمبر حق است و ای دین حق است، خیصرما سنگ ببارن. یا سرما عذاب سخت نازل کو چرا؟ به خاطر که مشرکین فکر میکردند که امی عقیده از یا عقیده اصلی هست یا پیرو ابراهیم علیه السلام هستن یا پیرو اسماعیل علیه السلام هستن و به ای شکل یا این عقیده رو داشتن و مشرک همیشه مشکلش همین هست که به حق گوش نمیده به مو باطلی که روان است اما باطل خدا حق فکر میکنه سجده به مخلوق میکنه رکوب به مخلوق میکنه ذبح حیوان برای مخلوق میکنه تاویزای رنگارنگ آرنگ و سنگ و بچوب تسلیم میشه پیش جادوگر میره جادو میکنه با در از هم فکر میکنه که من موحد هستم یکتا پرست هستم و کسی که مخالف عذیگ گپ ما مخالفه مخالف عمل ما میزنه او گمراه هست بی دین است، بی ایمان است، بی ایمان است. یک محصل ما یک روز قصه کرد گفت رفتم سر پیش سینمای پامیر در کچه گفت، اینجا هم گفت برای مردم تعویز میدادن خب شما همون وقت من دستان برشان گفته بودم که امی تعویز که از کلمه عوضه گرفته شده عوضه یعوضه تعویز تعویض چیز مستر است عوضه پناه برد یا پناه جست یا پناه داد عوضه پناه جست خودش عوضه پناه داد پناه داد آن شخص و یعوضه و پناه می دهد و اعوضه ما پناه می جویم اعوذو. اما اگر ما بگم که اعوضه کن خب تعویز چی مانم می دخلیم؟ تعویز یعنی پناه دادن چه قسم؟ هر چیزی که در تاویز نوشته شده تا را با پناه داده با ملائکه نوشته شده. نام ملائکه را نوشته کرده در تاویز، تو را به کی پناه داده بر ملایکه نام پیغمبر نوشته شده تو پناه داده به پیغمبر نام جن نوشته شده تو نشته... پناه داده به جن نام شیطان نوشته شده تو پناه داده به شیطان نام بت نوشته شده تو پناه داده بر بت پس کل از کفر از به خاطر که پناه جستن به مخلوق شرک است ما مسلمانانیم قل اعوذ برب الناس الله بر ما گفته که بگو که ما پناه میجیم به پروردگار خود ما پناه به الله میجیم و دیگر هم پناه میگیم به الله خب پیش اون دومی گرفتم همین گفت که فرمیدم رفتم پیش نفر مسلمان در پیش اون دوشیشتا برش گفتم که در و برادر تو مسلمان هستی و این خانم زن مسلمان است چون شما دو نفر رفتین پیش از اون دو ششتین و اون دو در پشت کتاب هم عکس بابا نانک است و عکس بط نه, کتابش که پشتش عکس بط است شما در سینمای پای میره سل کنیم پیش از این جا دوگران پیش این اون دو در پشت کتابش هم عکس بطش و عکس بابا نانک و عکس از هست برش میگه که بهتر چرا این کار میکنی؟ اون دو وقت گپش را بر برازی میگه که برادر. یه پای زیره نشنبی، وهابی وحابیست وحابی، وحابیست وحابی اون دو مسلمان موحد چی میگن؟ وحابی میگن چرا؟ خاطر دیگه مشرک اون دو فکر میکنه که رای ما حق هست. من درست هست رای درست روان هستم، افتخار هم میکنن پس از این خاطر دوستای عزیز مشرکین یکی از مشکل چی بود که برای پای... میگفتن که اگر قرآن حق و اگر دین محمد صلی اللہ حق خیصر پروردگار خیصرما تو باران ببر باران امکان هذا هو الحق من عندك که حق از جانب تو هست فمتر علینا حجارت من السماء پس بالای من ببران سنگ از آسمان چرا سنگ از آسمان ببران کهانی ما بفهمیم که ما باطل هستیم ما نیستیم ما حق هستیم یا الله ما که تو هستیم به این خاطر اینمی هست که مشکل اساسی مشرکین امی بوده اللهم غیر از کسانی که اگر مبتلا به شرک یا به کفر به شکل جهل یا بی خبری یا ای که فامیده که وله همی حق پسان وقتی که دلیل حق برش گفته شده و قرآن خوانده و فامیده باست به ای رجوع کرده بالاخره فامیدیم که مشکل اصلی مشرکین در توحید ربوبیت نیست در ادای عبادت هم نیست مشکلشان است؟ مشکلشان در توحید الوهیت است که در عبادت الله مخلوق شریک می سازند یکی و دوم مشکلشان در قانون الله مخلوق شریک می سازن اتخذو احبارهم و رحبانهم ارباب من دون الله اتخذو گرفتن احبار علمای خوده و رهبان و امو گوشنشین های خودم ارباب و دون الله خدایان گرفتن بغیر از الله یار ارباب عرباب ساختن خداهای خود ساختن پس مشکل مشرکین در چی هست؟ که در توحید الوهیت در عبادت خالق کسی دیگر رو هم شریک می سازند این مشکل اساسی از این بود و عبادت مشرک شیطان عبادت تغییر می ده. از نماز که در او خشوه هست او را به عبادت دیگه تبدیل میکنه که در او خوشو نباشه در او چکچک و اشبلاق و رقص باشه از این خاطر مشکل اساسی از اینا مش... ای است که انسان مشرک گد کرده خلط است پیشش چی خلط است عبادت خالق با عبادت مخلوق اردوشه گد کردن یک عبادت به خالق میکنه دیگه عبادت به مخلوق میکنه. پس در عقیده خود هم به وجود الله ایمان داره و ام به وجود شریکای الله به وجود الله هم ایمان داره به وجود شریکای الله هم ایمان داره منتعا به این نظر که اینمی بط یا اینمی قبر که ما به این میرم این دوست خدا هست ما به رزی رکو و سجده و نذر و قربانی میکنم تا این مره به الله قریب بسازن پس ام به الله ایمان داره و ام به غیر الله و این غیر الله میگه که ای هم دوست الله هست لکن قرآن میگه که نه. تو باید غیر الله رو حس کنی لا اله نیست هیچ معبود قابل پرستش ولو که ملائکه باشه یا پیغمبر باشه یا دوست خدا باشه یا دشمنه مشکل دیگه از اینا که اینا هم سجده به خالق میکنن هم سجده به مخلوق میکنن ایره شرک میگه شرک چی مانه؟ اصلا کلمه شرک شریک کردن است من شما را در برنامه خود شریک میکنیم از چی طریق تلفن میکنم بله سلام علیکم اینال اگر شما تلویزیون های را میگن ما او را شریک میکنیم پس مشرک کی میگن؟ مشرک کسی میگن که یک کس دیگر در یک چیز شریک بکنه ای از نگاه لغوی و در اسطلاح مشرک کسی است که در عبادت الله مخلوق هم شریک بسازیم پس اینا هم سجده به الله میکردن و هم بر بطه میکردن هم بر قبرها ها میکردن هم بسایل مخلوق هم. به الله پنا می بردن هم وجنها پنا می بردن هم به قبرها ها پنا می بردن هم به با تا پنا می بردن احیانان به یک سنگنگ پنا میبرن احیان به یک چوبک پنا میبرن احیان به یک توته خشت پنا میبرن والا این سنگک که چرا این ولاد تلویزیون رو میکنم والا ایر نگاه میکنن ایر... طفل ما یعنی پنا میدن پس به سنگ برناند آهی مورادر اگر در خدمت زن می کنه این مورا رو چه ویزان کردی میگه این مورا سچه است من از از از بلاها نگاه می کنه از چشم نگاه می کنه اونجا میخوانند قرآن که قل اعوذ برب الناس ما پناه می جویم به رب الناس اولطه به الله بسپار او از چشمام نگاهش میکنه کنه از دردام از مرضم هم, از همه چیز اما مشکل چی بود؟ مشکل مشکنی بود که در گردن های اشتک های میکردید که 35 و پ دا تاویز چوب از و سنگ است و ای گوش فلانی, و ای فلانی. هست و این می کل ح و چه هست و این تارک و چه هست و این ترک فلانی جای از ایری از انی تارم می پرداازن سنگار و قذ عاد تاوییز شته هست باز که تاویزشه بخوانی کرکبیل و خرخبیل خیل نامای شاید تانا هست و شرط تا توس و م تو کل ازیاست چرا؟ خاطر ازی که اینا عقیده مشرکین ای بود که هم الله را پرستش میکردن هم اولاد خدا به الله میسپرد هم تن به الله برای ازی چیزا هم میسپرد لكن عقیده توحیدی میگه که باید تو تمام مخلوقات چیکونی حذف کنی لا اله نیست هیچ معبود قابل پرستش نیست هیچ پناه دهنده الا الله بغیر از الله جل نیست هیچ کس مستحق سجده بغیر از الله جل مشکلی ای ای ای هم به الله می بودن هم به جنها، پیغمبران، صالحین، تار، سنگ، چوب، قبر، فرشته و غیره هم به الله اطاعت میکردن هم به طاغوت نماز من میخواهیم که مطابق امر الله باشه و اقیم الصلاه ولی ایره قبول دارم اما قانون من بانک من این هم شرک در قانون است نماز ما از امر الله میگیرم لکن پیستا که پیدا میکنم قانون که این بانک جایز است باز از قانون غیر الله میگیرم پس وقتی که تو مسلمان موحد هستی نمازت هم باید به با الله بخانی و قانونت هم از الله باید بگیری و وقتی که اینا باز به با غیر الله رجوع میکنن دلیلشان چی است؟ قرآن بر ما چی میگه؟ وقتی که باز بر از گفته میشد که خیلی چرا وقتی که الله را میشناسی به این مخلوق رجوع کردی میگم ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا دوستان عزیز این آیته شریف بسیار برای شناخت مشرک این آیته شریف بسیار دقیق است سوره زمر آیت سوم بخوان و یک دقیقه وقت رو سر از این فکر بخن. خوب مشرک ای معرفی میکنن که وقتی مشرکی نمیگفتن که چرا شما به این چیز عبادت میکردین میگفت ما عبادت به خاطر از این دریاچه میکنیم که لیقربونا الاله زلفا یا باز ما رو به الله چی میکنه قریب میکنه نزدیک میسازه من وروسیا هستم من شرمنده هستم دی سوره مبارک سای کرین الله جل جلاله چی میگن؟ اولو بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز عزيز الحكيم تنزيل الكتاب يعني اي كتاب نازل شده من الله أزجان الله العزيز الحكيم كزاته عزيز وحكيم است إن انزلنا إليك الكتاب بالحق الله جل جل ما نازل كرديم بالله يتو إيه بيرجنبرسين كتاب بحق فاعبد الله مخلصا له دین. الله را عبادت بگو توحید عبادت بر مयत میده فعبد الله پس عبادت بگو الله را مخلصا خالصانه با اخلاص خالصانه که فقط الله را عبادت بگو اخلاص چی میگن که تو در قلبت به غیر از الله کسی دیگه جای نتی عبادت خالص بر الله جلال جلاله بگو له الدین چرا که دین به الله هست عباد وقتی که دین دین الله است عبادت حق الله است بالای بندش پس ما تو موحد حق الله را می بفهمیم از خاطر عبادت فقط بر الله میکنیم چون الله خودش بر ما گفت الله پس عبادت بکو الله را مخلصا له الدین بسیار مخلص باید باشی در این عبادتت که خالص عبادت بر الله بکنی فقط عبادت به الله بکنی اخلاص به الله داشته باشی له الدین که دین خاص بر از او چی کنی تخصیص بدی اگر باز تو پیش یک شخص رفتی و برای از کو سجده کردی؟ باز مخلصاً لحود دین نشد. عبادت الله نشد. عبادت مخلوق شد. الله نیاز نداره که به مخلوق بری و ایت بر الله نزدیک بسازه. پیغمبر معلم است جبریل امین معلم بود برای پیغمبر سلام. پیغمبر سلام معلم ما هست. هر عالم معلم است برای ما راهی دین نشان میده. اما او برای ما مثلا این نشان نیست که باز ما او رو بین خود واسطق قرار بتید. علا علا سوره زمره رو خوب دعون خوب قرآن شریف تن باز کن بخاطر اینکه موحد واقعی شوی یک تا واقعی شوی و در روز قیامت کته رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمله پیغمبران و امت پیغمبران و در جمله کسانی که موحد هستن تو حشر شوی باید ای سوره مبارکه ای چند آیه خوب بخوانی و, و خوب سرش فکر على لله الدين الخالص على اقاه باشيد لله مخصوص الله الدين الخالص دين خالص مخصوص اكيد دين خالص مخصوص الله حسن. والذين اتخذوا من دونه أولياء اولياء المشتكه معرفي كسانك بغير الله أولياء غرفتن اینا اولیا والله ما پیش از یا میریم این دوست خود قرار داده پیش بط میرن و در قبر میرن پیش جن میرن و در مقابل از اون رو کسی او ما نعبدهم وقت که الله میگه یا میگه دلیلشان چی بود والذین اتخذو من دونه اولیاء کسانی که بغیر از الله تکه کسار دوست خود گرفتن دوست حقیقی الله هست که عبادت برا باید شده الله میگه که کسایی که گرفتن من دون بغیر از الله اولیه را گرفتن دلیلشان چی هست؟ ما نعبدهم الا لیقربون الى الله زلفا ما اینا را عبادت نمیکنیم پیش از اینا نمیریم مگر بخاطر خاطر ازیک یا ما را به الله نزدیک میسازن یقربون الى الله ما را به الله نزدیک میسازن پیش ازی بوت میریم، پیش ازی قبر میریم، پیش ازی مخلوق میریم، پیش ازی جن میریم. چون یاد دوستای خدا هست، یا ما رو به الله چی میکنه؟ این دلیل قرآن میگه که دلیل مشرکین هست. قرآن میگه: والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نه عبادتهم الا ليقربونا الله ما این ایرادات به خاطر ازی نمی کنیم. به خاطر ازی به دلیل سجده و رکوع، نذر قربانی میکنیم که این ما رو به الله چی کنه؟ قریب بکنه. ان الله يحكم بينهم یقینا که الله حکم میکنه در بین ازنا فیما هم فيه اختلفون در آن چیزی که اینا اختلاف داشتن که اختلاف میکنه که آیا ما پیش ازی بریم یا نرم و ای اختلاف میکنن که ما سه پیش ازی بخاطر خاطر ازی میریم که یا دوستای خدا هست یا ما رو به الله نزدیک میگه اختلافاتشان که قرآنم گذاشته ده این مسائل اختلافی در شبهات خدا داخل میکنه الله جل جمعيك إن الله إن الله يقين داشت باشك الله يحكم بينهم حكم ميكنا در بيرشان فيما هم فيه يختلفون در او شيء ديك إن الله لا يهدي من هو كاذب و كفار الله درغغوي كافر بسيار زيادة الله هداية نميكنا انا ره هداية نميكنا پس مشكل يسكي اینال مشکلی که اینا داشتن در آیت شرف چی میگه و یعبدون وره خالص سوره یونس آیه 18 چی میگن میگه و یعبدون من دون الله اینا عبادت میکنن من دون الله را از الله به کسی دیگه چجوری عبادت گرفته عبادت گرفته وا میگه ما عبادت نمیکنیم وقتی که رکوع سجده کردی نظر بوردی عبادت شد دیگه و یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم كنه برشان ضرر مترتهن برسهن لا و ويقولون دلیلشان میگه چی هست؟ هؤلاء شفعاء عند الله میگه ما پیش از یا میریم یا شفاعتگر ما پیش الله هستن قل اتنبیئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه تعالى عما يشركون شما میخواین که الله را فمون و که خالق آسمانها ها و زمین است شما برشان میفمونید که شفاعتگر ما هستن اینا چیکار هستن که شفاعت شما را بکنه؟ اینی مشکلاتشان یه هست و آخرین گف مشریکین باز چی هست ایخو که پیش ازی بطو پیش ازی قبر پیش ازی فلانی ما رفتیم یا شفاعت ما را میکنن باز آخر گف میگه و قالو لوشا الرحمن و ما هم؟ اگر الله میخواست باز امی بدپرستی و بی ایمانی و بی دینی خدا به کی نسبت میدن به الله نسبت میدن. چی میگن؟ وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم يا مسيب آيات چنده مست سوره زخرف آیه 20 مست وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم میگه یا به علم ندارن انهم الا يخرسون یا دیگه مردمای حسن که شما سوال کنین که اینا چی ترهات و خرافات گپ زشت چرمیزنن که حتی گناه خدا خوده که جرم خوده به الله نسبت بدن از خاطر انسان مسلمان موحد یک سعی و تلاش میکنه که کوشش بکنه که حق درک بکنه و قرآن بخوانه و قصه های از را بفهمه و از طریق الله جل جل برحمه ما شما توفیق نسیب بکنه که وقت برای قرآن بتیم و یه آیات بخانیم و سرزی فکر بکنیم و خدا از اینمی مسیبتهای شرک مثل که امتهای سابق مبتلا شدن ما امت محمد صلی الله علیه وسلم به مبتلا نشیم و سلام علیکم و رحمت الله و